کانال تلگرامی هزار افسان داستان های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده عظیمه علی گلزاده این داستان اجدها و مادربزرگش روزی روزگاری جنگ بزرگی پیش اومد پادشاه سربازای زیادی داشت اما به اونها حقوق کمی میداد سربازا نمیتونستن با اون پول راحت زندگی کنن سرانجام سه تا از سربازا تصمیم گرفتن بشینن و یه فکری بکنن تا بتونن از اونجا فرار کنن یکی از اونها گفت اگه گیر بیافتیم حتما دارمون میزنن. به نظر شما چیکار باید بکنیم؟ یکی دیگه گفت اون مزرع ذرتو رو میبینی ما میتونیم اونجا مخفی بشیم. اونجا مخفیگاه خوبی و کسی پیدامون نمیکنه. لشکرم لشکن هم که قرار فردا از اینجا بره. اونها میون زررت ها مخفی شدن. اما لشکری از اونجا نرفتن. و همون نزدیکی ها موندن سربازای فراری دو روز و دو شب تو مخفیگاه خودشون موندند و نزدیک بود از شدت گرستنگی از بین برن اما اگر از اونجا تکونم میخوردن جونشون تو خطر بود بالاخره با خودشون گفتن فرار ما چه ای داشت اینجا داریم مثل بد وقتا حلاک میشیم همونطوری که اونو حرف میزدند یه حب یه های آتشی تو آسمون پیدا شد. اون پروازکنان به طرف اونها اومد. پرسید و چرا که اونجا مخفی شدین شما؟ اونا جواب دادن ما ستا سرباز هستیم که از خدمت فرار کردیم. چون حقوقمون خیلی کم بود. حالا اگه اینجا بمونیم از گرسنگی تلف میشیم و اگه حرکتم بکنیم اسیر میشیم و دارمون میزنم. اجده ها گفت اگه قبول کنید که هفت سال ناکر من باشید و به من خدمت کنید، من شما را از وسط سپایان رد میکنم و نمیذارم آسیبی به شما برسه. اونا گفتند، ما هیچ راه دیگه نداریم و مجبوریم پیشنهادت هم قبول کنیم. اجده ها اونها رو با پنجه های خودش برداشت و پرواز کنن از بالای سر سپاهیان رد شد و خیلی اونورتر کیلومترها دور از سپاهیان رو زمین نشست. ها به سربازای شلاق کوچیکی داد و گفت با این شلاق به زمین ضربه بزنین تا هر قطر خواستین به دست بیارید. از این به بعد میتونید مثل یه پادشاه زندگی کنین اسب و کالسکه بخرین و خوش بگذرونین اما بعد از هفت سال شما مال منین بعد یه قراردادی رو جلوی اونها گذاشت و که اونا امضا کنن بعدم گفت اون وقت من میام و معمایی از شما میپرسم اگه تونستید جوابشو بدین آزاد میشین بعد از گفتن این حرف اجده ها از اونجا دور شد. سه مرد با شلاق کوچکشون به راه افتادن. اونا هر قدر پول لازم داشتن به دست می آوردن. رباس های گرون قیمت می پوشیدند و به همه جای دنیا سفر می کردن. به هر شهری که می رسیدن اونجا خوش می دیداروندن. حسابی تفریح می و با کالسکه باشکوی خودشون گردش میکردند. میخوردن و می, می و اما هیچ وقت کار خلافی انجام نمیدادند. زمان خیلی زود گذشت. هنگامی که دیگه هیچ چیز زیادی از اون هفت سالشون براشون باقی نمونده بود. دو نفر از این سربازا خیلی ناراحت بودند و حسابی ترسیده بودن. اما سومی با خون گفت نه ترسید دوستای من؟ من که همین دیروز به دنیا نیومدم حتما میتونم جواب معما رو بدم اونها وارد یه مزرعی شدند و رو زمین نشستند البته قیافه دوتا از این سربازا خیلی ناراحت و گرفته بود همون موقع یه پیرزنی طرفشون اومد و علت ناراحتی رو از اونها پرسید اونا جواب دادن افسوس تعریف کردنش چه فایده داره؟ کمکی که از دستت ساخته نیست؟ پیرزن جواب داد از کجا معلوم حالا شما بگین چه مشکلی دارین؟ اونا توضیح دادند که تقریباً هفت سال پیش کمک اجداها رو قبول کردند و او به اونها پول فراوونی بخشید اما در عوض اونها مجبور شدند یه قرارداد رو امضا کنن که حالا اگر نتونن به معماش جواب بدن اسیر تلسمش میشن پیرزن گفت اگه میخواید کمکی به خودتون بکنین باید یکی از شما به جنگل بره اونجا یه کلبه یه سنگی قدیمی و خراب است که اگه واردش بشید میتونین کمک گیر بیارین دو مرد که ناامید و ناراحت بودن فکر کردن و گفتن این کار هیچ فایده ای نداره و از جاشونم تکون نخوردن اما نفر سوم که روحیش از همه بهتر بود به طرف جنگل رفت و اونقدر به راش ادامه داد تا اینکه کلبه سنگی رو پیدا کرد داخل کلبه زن خیلی پیری نشسته بود که مادر بزرگ اجدها بود او از مرد پرسید چطور اونجا را پیدا کرد و چی میخواد. اون همه ماجرا رو تعریف کرد پیرزنم که خیلی مهربون بود دلش سوخت و قول داد کمکش کنه. نیمه های شب وقتی پرواز پروازکنان به خونه برگشت خیلی گرسنه بود و از مادربزرگش غذا خواست. مادربزرگ سفره غذا را چید و اونقدر غذا و نوشیدنی آورد تا اجدهها سیر شد. بعد از شام وقتی که سر صحبت باز شد پیرزن پرسید امروز چطور گذروندی؟ روی چند نفر رو تلسم کردی؟ اجدها گفت امروز زیاد خبری نبود اما سه تا سرباز هستن که کم کم وقتشون در حال تمام شدنه پیرزن گفت واقعا سه تا سرباز؟ یعنی امکان نداره که بتونن از تو فرار کنن؟ اجدها ها با اطمینان گفت اونها مال من هستن چون من میخوام از آنها معمایی بپرسم که امکان نداره جوابشو بدونم پیرزن پرسید چه معمایی میخوای از اونها بپرسی؟ اژدها گفت الان میگم تو دریای شمال یه گربه دریایی مرده است که قرار اون رو براشون کباب کنم استخانه یک وال قاشق اونها هست و پای تو خالی یعصب مرده لیوان نوشیدنی اونها میشه وقتی اجدها به رخت خواب رفت مادر بزرگش سنگی رو بلند کرد و سرباز از زیر اون بیرون اومد و بعد مادر بزرگ بهش گفت همه چیز رو شنیدی؟ سرباز جواب داد بله چیزای زیادی فهمیدم حالا میتونم مشکل رو به راحتی حل کنم بعد از پنجره بیرون رفت و پیش دوستاش برگشت. او برای اونها تعریف کرد که موقع حرف زدن اجدها با مادربزش اونجا بود و، جواب معما را با گوشهای خودش از دهان اجدها شنید. همه خوشحال شدن و شلاقاشون هاشونو به زمین کوبیدن، بعد پورا رو جمع کردند و بقیه هفت سال رو با خیال راحت، خوش گذروندن سرانجام وقت وعده رسید ها با قرارداد امضا شده با سراغشون اومد و گفت من میخوام شما رو به یک خونه زیرزمینی ببرم تا با هم غذا بخوریم اگه بتونید حدس بزنید چه گوشتی رو براتون کباب کردم آزاد میشین شلاقه هم مال خودتون میشه سرباز اولی گفت تو دریای شمال گربه دریایی ماردهی هست که قرار کباب بشه. اجده ها حسابی جا خورد. کمی من و من کرد و سؤال دوم رو پرسید. اما نگفتی با چه قاشق میخوای اونارو بخوری؟ جواب دادن استخونه یک وال قاشق ماغ میشه. اخمای اجده ها در هم رفت و سه بار فریاد کشید بعد روبه سومی کرد و پرسید اگه گفتی لیوان نوشیدنی از چه ساخته شده اونم جواب داد استخوان خالی پای اسب مرده اژدها نعری زد و پرواز کنه از اونجا دور شد او دیگه نمیتونه سربازا رو به خدمت خودش بگیره و اما سه تا سرباز شلاقه را برداشتند و پول فراوانی جمع کردند و تا آخر عمر به خوبی و خوشی گذروندند.